فاطمه اکبری کسی که نوین الماس از ثپ شروع کرده و الان یکی از بازوها و وزنه های فروش شیشه توی نوین المسه به شدت اکتی فعال و خیلی با انرژی همیشه کار میکنه و همیشه هم آمار ما بوده تو این چند سالی که با هم همکار بودیم خیلی چیز ازش یاد گرفتیم و امیدوارم که در ادامه این مسیر هم در کنار ما باشه و از وجودش لذت ببریم به این وسیله میخوام. ازت تشکر بکنم به خاطر این چند سالی که تو نوبین الماس زحمت کشیدی تو نقومین سالگرد نوبین الماس میخوام بدونی که زحمات ارزشمنده همیشه برای مجموع ارزشمند بوده و هیچ وقت هم نوبین الماس از خودگذشتگی و فروش هایی که ثبت کردی رو از یاد نخواهد بود خیلی از شما ممنونم